این است که میگویم خواستن هم همیشه عشق نیست باید یک دار کوچک علم کنیم در آن گوشه و تو نزد یکی از استادان بافندگی فرش بروی و یاد بگیری که چگونه قالیچه بافی. تو حتی اگر سالی یک قالیچه زرعونیم زیبای زریف به تا بفروشیم میتوانیم به کلی از احتیاجات مالیمان پاسخ بدهیم سفر و خریدهای تفننی دوست ندارم قالیچه بافتن را دوست ندارم این وقتی را که برایم مانده میخواهم آزاد باشم و راحت هر طور که دوست داری بسته من این نبود که آزادی و راحتیت را به خاطر قالیچه بافتن تباه کنی گهگاه می بینم که از سر رفتن حوصلهت در غیاب من و شبهای بلند بی میگویی. فکر کردم شاید بافتن یک قالیچه کوچک در طول سال راه حلی باشد و کمکی به تولید ملی هزاران هزار زن مثل تو در سرزمین ما زمانی را تلف می کنند که با آن می توان زندگی را به بهترین شکل ممکن آراست و هزاران هزار کودک را به بهترین شکل ممکن بزرگ کرد کارهایی هست که انسان در ابتدا گمان می کند که آنها را دوست ندارد اما بعد در جریان عمل دل آنها می شود بگذریم اوز می خواهم هیچ ملتی زیر فشار به عظمت نمی رسد هیچ انسانی زیر فشار اوج نمی گیرد اما غالی بافان سال پیش از این زیر فشار می بافتند می بافتند اما آیا به نیکبختی هم دست می یافتند؟ ما سالیان سال برای دفع فشار جنگیده ایم حال چگونه ممکن است مبلغ نوعی فشار باشیم متشکرم گیل مرد ریز نقش شکستنی من تا ساعت چهار صبح می نشینم تا پاک نوشته اولین داستانم را دنبال کنم تو در ساعت دو و نیم صبح می آیی. یک فنجان قهوه ترک تحترخ به من می دهی خواب و میروی. نزدیک ساعت چهار صبح هم میای ولی فقط میگویی خسته نشده ای و من پاسخ میدهم چرا دیگر میایم که بخوابم تو میگویی اگر صبح توانستی برای پیاده روی بروی مرا بیدار نکن میگویم باشد پنج شنبه جبران میکنیم تو میگویی من برای قبول دار قالیچه آمادم حرفم را پس گرفتم لااقل می آزماییم. متشکرم. صبح بخیر. باز روزی نو در راه است. و تو باید که مسلح باشی با عشق اندیشه ایمان شادی چاره نیست عزیز من سهم ما از میلیاردها سال حیات و حرکت ذره بسیار ناچیزی است این سهم را چه کسی به تو حق داد که با خستگی و پیری روح با بلا تکلیفی با کسالت دو به تباهی بکشی باور کن زندگی را پر باید کرد اما نبا باطل و بیهوده نبا دلغکی و مسخرگی نبا هر چیز کدر و کسیف و نبا هر چیزی که انسان شریف از آن شرمش می آید زندگی را پر پر باید کرد لبریز و دائما سرریز کنن پر و خالی باور کن از هر حفره که در گوش کنار زندگی من پدید آید رنگ دلمردگی و پوچی میریزد زشت بر جمیع حرکات من و تو بر راه رفتن، نگاه کردن، بحث، منطق و حتی خندیدن من هرگز نباید به فردا واگذاشت چرا که خالی دلمردگی را از امروز تا فردا همچنان خالی نگه داشتن خطر کردنیست مسیبت بار و بی دلیل زندگی را پر پر باید کرد دیگر فرصتی برای پیاده روی صبحگاهی نمانده است من و تو بیشک جبران خواهیم کرد